الحمد لله رب العالمين و صلی اللہ علیه سیدنا رسول الله را آله طیبین و طاهرین و مرسومین و لحظ دائمت دائم و اللهم اغفر لنا جميع جمیع المشتقدین و رحمنا و رحمتی و رحمتا بحث یک مناسبتی رفتی بحث این بحث در باره بود مناسبتی متعرض این حدیث معروف حنیفیت که حنیفیت ده 10 تا کمتر یا بیشتر و به مناسبتی اینکه که تحویر از اونها به عنوان به اصطلاح سنن المرسلین یا مثلا سنت یا تعبیر فطره به این مناسبت باید این بحث شدیم رفتش هم با بحث ما روشن به خاطر این که این آیه علی او تغییر الله تفسیر شد با یک فطرن ابتده ملت الهی و حنیفاً فلسفه الله الی که براناس علیه حالا تبدیل خلق الله ذلک دین الخائن این دو تا آیه رو با هم دیگه رخداده بودن گفتم به مناسبتی اولا اثبات خود اون آیه میشه بعد اگر رخدل در اومده اثبات شد. میشه از عنوانه تغییر دین الله هم اثبات بکنیم حرمت حرق الهیه روش لذا همونز مقدمات استظهار هستیم این ضبایتی که در باب حنیفیت وارد شده که حنیفیت یک حنیفیت ظاهره است، و یک حنیفیت باطنه که توقید باشد و نفیشه ظاهره هم به جهات تهارت بده چون مخصوصا ادهی از جاهلی اونها در مثلا نامناسب بود به از مو به لازم بو بوی بدنشون بلازه جات متعدد اینی که در روایات تأکید شده بو عنوان حنیفیت این بحث حنیفیت و حالا فطرت مجموع روایاتی که در این عنوان آمده ادهیشون عنوان حنیفیت داره ادهیشون هم عنوان فطرت داره ادهیشون عنوان سنن مرسلیم ادهیشون هم من از, سن... از سنه داره مم. علیه هایی این طوری داره که خب اینها بررسی بشه تا بیر اون نتیجه نهایی که میخواستیم به دست میاد یا نه در درزی اول روایتی بود مرسل در کتاب علیه ابن ابراهیم در تفسیر علیه ابن ابراهیم که سراحتا در مجموع بیان از این تفسیر از امام سادر مرسلا در کرد در بعضی کتاب سعد و عالم داره در این مبارده کتاب موجودی که ما داریم ظاهرا کلماتو خود احیبن ابراهیم نه آلم است و نه ساده است. حالا به هر حال در اینها این آمده این این ذکر شده هنیفیه ده تا ذکر شده در این اصطلاح کتاب مرحومه ولی ابن ابراهیم تفسیر من این کتابی که به این اسم معروفه ده تا ذکر شده و ارز کردیم مرحوم آیه مجلسی ارز کردم دیروز مرحوم بهار مرحوم سال وسائل. تو کتاب تهاره و آنگان آداب الحمام این روایت سعورده در کتاب مرحوم مجلسی در این جلد برنیم. چاپ جدید بهار هار سبت 76. این از این جلده 76 چاپ معروف بهار هار یه چاپ دیگه بهار که کردن شماره هاش کم به هم چون این سه شماره در مصد فهرست شدن در این چاپ جدید اون سه شماره بودن در آخر بهار. اگر اون درست باشه این میشه 72 مثلا یا 72 حالا به هر حال این از کافت قدیم جلد شونزه عنوانش هم هست از قسم سانی مجلد از ساده کتاب اول و سنن و العوام و نواهی و کبار و معاصی و, و تجمع یه همه هم یه جا جمع ترمونده هم مرام و جمع جمعی و ایشون عنوان باب داده اصلا خودش رو باب دوم از این عباب اولش عباب ترتیب و تنظیر باب دومش از سننه لحنفی حنیفیه آنوانش همینه عنوان خود باب از سننه لحنیفیه این عبارتی بام که خونده در الان خدمتون شماره ست ایشون از تفسیر نقل کرده تفسیر علی ابن ابراهیم و از اون مسادر دیگه نقل نکرده همون که هست در این تفسیر تفاصیت در رواست دیگه هنیفیت ده تا قرار داده شده اون آلا اون دومش که در بدن جای خودش پنجتاش در سره اون در این دواراته علیه نبیرم که خوندیم اگه یادم وارکتون باشه دومایتا میگم یکیش احضا شاره کوتاه کردن استبیله یکیش اعفا الله ها کردن ریشه تم ما شعره تم زارش زیاد کردن گفتن نهی جمعایت جرده کوتاه کردن اون یه سر ماشین کردن با قول ما، ایمان سواکه و خیلال این پنشتا این پنشتایی که در این کتاب آمد لیکن که به کتاب و حدیث و هم صحبت شد سندی به حسب ظاهر نداره دیگه حالا مگر با جبرانهای دیگه از روایات دیگری که ما الان داریم که تقریبا شاید بشه گفت همین جهث هست در کتاب فقه و رضا اا قال الله عز وجل و تبعت این و تبع این آیه رو آورده و خود قرآن و از اینجا این سر اینجا اشاره نکرد دارین شق و رضا اشاره و ملت ابراهیم هنیفامو و تبه نداریم و او هیچ که ان تبه ملت ابراهیم. هم اونی که با آمده و تبه ملت ابراهیم. با فعل مازیز. در کتاب فقه لزائم اینطور آمده. اما شنوند هنیفی ملت قائل الله عز و جل نمییه و تبه ملت ابراهیم. فایده اش را سنن خمسطون فررست و خمسطون فر جسد مثل همونه ده تا گرفتی پنج اما در این کتاب پنجتای سر اینجوری یکی مسواکه اینجا سواست نداره مسواک خلاف توش نداره شده هم سواک باشد اخذ و شاره این دو تا مشترکه. فرق و شر موی سر رو باز بکنه شانه بکنه موی سرش رو فر شانه کردن اگر مو گذاشت موشو مرتب مرفت بکنه پر... پر... آشهده نماشه این فر با شهر توی تفسیر علیه نبرانه نبود بلا نه اون آنه فر شر غیر از فر با یعنی تراشیده هم این فر با شهر اونجا نبود مصواق هست مصواق اونجا بود اخز و شارب اونجا بود اینجا هم هست حلال اونجا بود اینجا نیست حالا اینه که اینجا هست بگن فرق و شر... در اونجا نبود در اون روایه فرق و شعر نبود فرق این شانه زدن میگه موار جدا میکنه با قول شبیه فکلی چیزی میزن مرتب میکنم در مزمزه و استنشاق مزمزم اونجا نبود استنشاه هم اونجا نبود از این یک نقطه ای صالحی اونی که کار رو مشکل میکنه اینه فر با شعر و مزمزه و استنشاه اونجا نبود و اونجا به جای این ستا تا و شعر بود که کتا بود خلال بود که اینجا اصلا نبود و الله حالا منکر و بیشران اونو به در عمر می‌خوره عرفاء الله ها انجیلین اون یکی منظورمات بیشتر ازش یه گارد بحث اونطوری نیست است یکی از عجایب کار اینه اون نشراچی که الان محل کلام ما در این متن کتاب سبحروزا نمی اومده اونجا بود و عرفاء الله ها من باحث مطرون رو من ارز کردم و نمی فهمیم واقعا ما هم خودمون الان سردر نیاریم که صحابه سرام مقابل ما فقط من یه نقطهی رو ارز رو که روشن بشه ایشون که الان هسته و هم مستون هم و هنیفیه این تو نقره این هم نیست رو فور این مک نیست در این هم نمیدونه دیگه چرا مرمومه ای کسی این کار کنه فخر رضا رو ماندی فخر صحبت کردیم یه احتیاجی تکرارم ندر زمان مجلسی پدر شخصی نام میره حسین قاضی حسین چون مکه میره از جاج قومی کتابی رو میبینه استنصاف میکنه بعدم چون اول شد و علی موسا معروف شد به فخر رضا این کتاب این کتاب مخصوطی و ادام میکنم که اینم آمده حالا خیلی واضح هم نیست که در حاشیه کتاب سواره خط علما بود و ا این هم برای ما بسیار بسیار واقعا نوکتی برای بنده ارزشه که چطور بازی میر حسین رحمون با یک کتاب رو به اون مسافت حجی مینه که کوششی نیست خوبه استنساخ کرده این سوره خدمت نمرد نبود که فتوکپی بود صورت خط فلان صورت صورت صفوتکپی خب این در حاشیه شده بود که صورت خط فلان خط فلان این خط در حاشیه در صفحه فلان برگ چندم این معانی موجود بوده و هر حال ایسو متاسفانه اونا رو نرکار گفته خطوط علمان بوده یار. کی از اون علمان کی چی تعبیر کردن از اون کتاب اونها در اختیار ما نیست از اون زمان بعد مجلسی پسر در کتاب بهار این رو آورده و دیگه یه این کتاب بحث معروف شد از خدم هم در کتاب مثل اصول و مثل فسول و دیگر اصلا تو بحث خبر باقید اصلا اینکه از بحث اصول شد. اینی که قرزا شد در مستدر خیلی کلمات نهار کرده خیلی مفصل نوشته در جلده سه کمتر کتابی رو بندازه خبر رضا اینقدر تحتیش کرده ایشان. خیلی مفصل نوشته. <تصحبا> نیشون دیده که کتاب خیلی جاب خب صحبت ها راجب اون کتاب هست و حرفای هست اون کتاب من چند بار ارز کردم در اون نسخه ای رو که از مکه عورده بودن و خیلی عزیزان متخلق هستیم که حواشی نه بشه این امکانی که مجلسی داشته بی رئیس دولت حساب می‌شد دیگه مثلا اداره مملکت دست مجلسیو چند نفر را گوشی از اسلام میرود تا قوم یه سوالی میکردن که که کتاب مال کیه چند تا از چون یه حجاج قمی بودن خب اینو از مکه برگزارون در شروع طرف شد بپرسیم حجاج چی بودن پدرشون مال درشون یا چی کتابو داشتن کسی از اون کتاب خبر داشت قمی‌های دیگه هم خبر داشتن این کتاب روشتا مکه بازن دیگه بیش تنه از اون کتاب در کلیار ما در از یکی دوست نقطه مبهم هست در مورد این کتاب که ما هم حتیز نفهمدیم نیدیم که سی هم متفتن شده باشه به این نکات مبهم این کتاب و هر حال این کتاب مشروع کنه اونش یه خودش و این که اون مجموعه اگر چاپ میشد اون ای که از مکه آوردن الان یه مقداری شاید مثلا تشریح او و نامرتب بودنش بیشتر معلوم شد با که متاسفانه از کردم این چاپ جیلی که از فیخورزا فقط بخش فقرشه چون بعد از این بخش حدیث داره که این حدیث اصلا مال فیخورزا نیست اونا با همین جهت چاپ نکردن متفرده داره کلام لغون حکیم داره چیزا خیلی برای متفرده اون اگر کسی بخواد نسخه پیدا بکنه، این فخور رضا با همون شکل اصلی خودش با مغنعه شیخ مفید یک چاپ شده من الان مثل خفتیش اطلاع ندارم اما از مثل چاپیش یک چاپ سنگی بزرگی یه بزرگ در اون حجم برسا بالند چاپ شده با همه عنوان فخور همراه مقنعه شیخ مفید اون نسخه اصلی حالا این یک مثل مثل دوبام این که مردم آهی سید محمد شد ابو محمد و سر حسن سان در رساله که در این جلد نوشته متفتر نکته رو درسته نکته ایشون کاملا درسته و کاملا صحیحه و اون که این مجموعه متفرقات اصلا کتاب واحد نیست سرهاش توی کتاب شده بوده اما این متفرقه بوده اون که روزی چی بودن چیکاره بودن نمیدونیم اصلن این چاپی کردن که از بهررضا اون متفرقات چه حظ کرده اصلا متفرقاتش رو اصلا یک مقضایش حدیث از این آخونا که این بعضها به اسم نوادر احمد عشقی چاپ شد. ممزهر تقارضا بوده که این توضیحاتش بوده است. بعدم مثلا وسیعت لغمان این خیلی اوراقه او یعنی آخراش بیشتر تقریبا که قردزارش این قسمت فرهیش منظره طلب از قسمت فرهیش حدودی یک صفحه همون قدیم یک سطحهش شبه اصول حقاهد و توحی و یک صفحه تربیدان کمتر یه درده تو فهم میره همچین ناگاهانی هم مثلا از توحید دیده اون یه تو فهم حالا کجا میره میره تو همه حنیفیت <تصحیح> یک درده از توحید و عقاید. این کلمه اول اونجای سوال فهم میشه <تصحیح> این کلمه بذار عبارتی پیار بذار از این اصلا ناقصه مثلا برزیش داره بلکنه هم امره هم داره بلکنه هم بذار شما شیونجوان این دقیقاً اون بین جلو خوشبودی فاعله که بذار این, این دقیقاً در اون مجموعه از جایی که از اول کتاب جدا میشه اصل هم یبول و علی موسی اول کتاب خود یک صفحه که اینالله کلنا به المعرفه مضمونه کنم این عبازشی من بیگم و بعد یه دفعه میگه که مثلا و معرفه دراشه افضال من المعرفه و سنان هنیفیه و یه خمسان از معرفات میگه به سنان هنیفیه خمسان دفعه از خمسان دفعه از این دفعه یعنی احسان کاملا توی این چاپ جیدن نوشه شیست سطر در اینجا این بیش از شیست سطر اصلا از معرفت یه دفعه اصلا به بوتراشی و سختراشی و مسواک و یک دفعه جا به جا میشه یعنی کاملا واضحه که این اول کتاب تا یه صفحه بوده همونجوری گذاشن سحاجه کردن رفت شده این کلمه اول که قرن این فایده را بالا خدمت ارجو اگر عاوز میخام این فخرزا اولش شده اول, اول همین کلمه است از سنن حنفیه حنفیه این اول فخرزاد اون دقیقا چیه یک صفحه‌ای که در معرفت و توحید و چه ره روشن شد و لذا خود این عباراتی که ایشون شده به هم سنان اینطور نیست اصلا این از اینطور نیست این اول اول فقه موجود ما اینه این سنان رهنوئیه <تصفح> ما سو مرحله امطمال نصر و خیلی دیگرم محترم در حد استظهار تبیق و یک خبیل خیلی بیر کتاب محترم یک دو محترم این کتاب روز سالهای سیصد نوشته شده زمینه اجماعاتی که شهر در خلاف و سلیمون ادامه کنه همین کتابی از این جلکه گرزه نه با عنوان روایت یعنی یه مقدار تشکیل خود اولیه ما از سالهای سی تا 400 شما دعوای اجماع در این وسط داریم چون در بحث اجماع هم سابقاً کراراً گفتیم هم, هم اینگاه اخ... کردیم یکی از کار مهم ما اجماع رو ما در مقابل اجماع به عنوان یک دلیل تعبدی که دست چشم بسته باشید نیستیم سعی کردیم ریشه پیدا بکنیم خیلی از ریشه های اجماعات در اهل بغداد به همین این یعنی هم خودش مردم ولایت بسیار مردایی بود نظری یعنی هر کی باشه شر باشه کسی کی باشه و هم ادامه شده که اگر باشه مغناهی باشه مردمون سعی نخواهند کرد کتاب نزدیم برای آن تبار به نظر دین قوم و بغداد. از که این کتاب موجود به قوم اخرنده با های بغداد نزدیک نیست به قوم نزدیکتر این کتاب موجوده ما مثلا شاید تعرفه اول به بغداد نزدیکتر است ملحق کسی باشه این کتاب موجود ما به قوم نزیستن تا به اما اگر برید نیست این حرف باشه چون فعلا مکتب بغداد ادعای اجماع تو مسائل خب یه همون سه روز که مرحوم صاحب هدار قبول کرد کتاب میگه خب مدقیلی مسائل ادعای اجماع شد دهیدم اصل همه ده فقط این کتاب موجوده راست داریم از اما این درست در حجیب این یک ز مرحله از سفر شیعه رو که هنوز هم ما همش سعیمون اینه که فقه شیعه رو در طول تاریخ روشن بکنیم ریشاش حالت تعبد در مقابل اون نیه اما این کتاب مورد ما بوده بله انسان. یعنی اینجا افتاده دوران چه ام و اما چند سال در برداد بعد از شیخ طوسی بعد مثلا ابن, ابن شد اول شد در این روی برای ارتقازات سال سی تا شار خوبه در چرا اصلا یک خوبه چیز بود از, مناب... یعنی از رساله شرمقانی همین که بارزا همین که بارزا, بارزا این چون اول کتاب یه و علی ابن موسا خیال. اصلا او یه سفر الان من یعنی شواتیان شد باشواتیان من اون یبوله علی نموسه مانه فقارزا می دستن کلن. از اینجا شوار زاد اون یبوله علی شوار می شود شوشی بزیاد از اینجا فقارزا یعنی فقارزا نه من از اینجا فیغارزا. وقیع و علی اگر طبیعی اگرم شاید در اول مثلا دو صفحه عقاید بعد واجب فرض شود خودمون نمیگیم علایم اون اولی که مربوط به عقاید مثلا رفیض از اونجایی که فقه همین کلمه است از کلمه الحمدی که یه واجب فرض که نش یقول علی صفحه اول هست. اینجا علی الموسوسا چی شده که مرحله عمله طول صفحه عقاید مال کی نمیدونیم اما مال عقاید معرفت ایناست آیا واقعاً میشه نوشه 600 بیاضه به نظر من 6 صفحه بیشتر بوده نه 600 این به 600 هم نمیخوره که 600 بیاض باشه چون اگه اون تورید و معرفش رو گه بعد تانو ببت و امامت و محاسم بازی اینجور باشه که خیلی با چند صفحه باشه اون عرفاز اگر عقاید میخواست متعرض باشه علایه حاله اونجایی که فخته از اینجا از این کلمه فخت شروع میشه از کلمه اما سنن رو هنیفی یه میشه اما هم ندارا این اما رو مرحوم صاحب به برای تنظیم اعبار اضافه کرده این راجعه به این مدل این یکی از کلمه این کتاب موجود این امتیاز رو داره همی نازه به روایات اصحابه این هست و دقت هم داره هم به لحاظ دقیقه خودش خیلی جالبه صورت جوه کتاب و هم به لحاظ زمینساز ارتکاز فقهای های بغدا چیز جالبه خب مثلا ما برای اولین باز توضیح با میخوام عرض اعرض بکنم براتون چون برایشون افتادن از براتون که بود. ما هیچ روایتی کلن ندارید که استحابه ستاست هیچ روایت ندارید تو بعضیش یکی تو از دوتا دو دو هاش هم مختلفه مجموعی ما در استحابه کاملا مختلفه شما ده دوازده خائقه میشه اولین کسی که گفت که گفته ستاسته برزانست این متوسطه و قلیه و کسی بید. ایشون ولی ما اونجا بحث مهم پیش ما در بحث استادن، اون بحث هستند که آیا واقعا روایتی که بوده به ما نرسیده یا ایشون جمع کرده اگر جمعیشان باشده شما تا الالان هستن استاذه ستان این الان در آن در جمع فقر الله اله یومنها دا در ما هستند صدوق هم دیگه و قال عدیفی رسالتیه رسالت. شد صرف انتقال دقوم هم مرون صدوق رو پدر اونم هم نگفتی سه تا گفته مرون صدوق رو پدر سه تا گفتی رو پسرم نرکه در این خب این دهتی که نرکه بزرست تازه در در وقت دنیو می‌گم نیستن. اما الان بیایید این کار رو اقدار اول همیشه باید انجام بدهیم. تکه‌تنی که می‌خوام بگم، ارزشش رو دادن نمونه. اینی که من می‌گم به سفارش ارزشش داره، نه این که یک کتاب حدیثی از امام رضا مسیح نه، و ازیکی از اینها. چون سابقه ازین کتاب حدیثی نیست، کتاب از این کلا فقیه. این کتاب یک ارزش خاصی در میان تاریخ ما پیدا کرده. نه به خود کتاب به خاطر اون مبانی علمی اون مثال هم زدن کار رو انتخاب کرده که الهیومنه ها هست خود کلمه ما و مضاف الی اله این در همین کتاب آمده اما رو مطلب <متصفح> این بر بار در سنید این کلمه تعدیر در این کتاب آمده کتاب به خود کتاب حالا اگه بخوایم یکی بگیم چه کارها این کتاب که الهیومنه ها دا مؤثره به قسمی نظر این کتاب به نظر ما ارزش مثل صاحبادرن قبول کنه کتابو صاحبادر فقیه اومده تو این کتاب داره مقاله‌ای در فقه اومده نداریم از این به تو پیش کردن خب اونا به خیال که که بعد از مثلا چند بعد از ایثار خرده اینا مسئله اون نمیگن که اصحال میدونه ما مقاله قبول داریم درسته این مطلب ایشان مثلی بوده هزار خردی این سال چی ما بوده دین نداره پین کتاب علت پیدا شد از مکه پین کتاب پیدا شد لکن تحلیل ما با ایشان میکنه تحلیل ما نشی یک حقی نیست همونجوری که آیه سر اهدماندار است عبدوسلطان سر اهدمار میز، تکلیف شرمغالی بوده به ادعا حسین روح نوبختی من کلال هست در خاندان نوبخت یک خاندانی هستن که اضافه بر اینکه جاه مذهبی دارن مثل خود حسین که وکیل خاص حضرت خاندان روشن تکر دینی به اسلام رسیدن، روشن فکر چون قالبشون منجم و مهندس اینها بودن، یه ای خاندان علمی هستند. ایشان تشخیص دادن کار بسیار خوبی ام بود، انصافا بهنی علی بن الله الان هم بشه کار خوبی ایشون دید غیبت از ثقه و سوره و تهییل اصلا اسم داخلی از بقات غیره برای از خیر بهشون کنن. اون خیرات سوره رو خیرات اگه برای ای این تشریح و رو هم که این تقریش و تذویر رو برداروا امام که فعلا قایب است و ذهن‌هاش مشغول است گفت لا اغل چه وظیفه مردم یکسان بکنیم یک چیزی واقعه اینو گفت بردارید که یک نواق بشه و این کتاب تعریض شد که انصافا تاثیرگذار در خیلی از مطالب های بعد هم همین کتابه ما در تقسیم بندی هم که خود بنده برای مکتر کردیم کتاب رو آخر مسئله اول بغداد قرار این یعنی مکتب بغداد اوائلش مثل هشام سالم و هشام حکم و ابن عبی رو اینا اول مکتب اول بغداد که از سال 150 تا حدود 3010 این مکتب اول بغداد اولش اوناست آخر شفر رزاست آخر مکتب اول بغداد شفر رزاست که واقعا متن مکتب خوبیه احضافا خیلی دقیقه بکنین این متنی هم که ایشان آورده این بنینه ها در کتاب خسال صدوق آمده این متن از کل چی فهم خیلی دارید؟ حالا اصحاب ما چرا قبول نکرده من هم نمی‌دونن. خوب دقت می‌کنید این متن شرح تاریخی این دار. که در خصال صدوق آمده این همون متن به قرضا است. باشه نک متن کرده و اینکه توبنی فضل پیش نه صدوق در تعبیر نخر این نمی‌خوام چرا اشکال داشتن در شمارشش، اشکال داشتن اونم من الان نمی‌دونم. در کتاب خسال صدوق اینجور آمده محمد ابن ودی من البته در کتاب وسائل این حدیث اوورده کتاب خسال و وسائل اوورده آنیم تا کنم اون جلد سهاره اگه من فعلت شانگی دیگم کنم دو سه کتابیه مشکله از کتاب مرموم به اصطلاح بهار میخونم از همون صرفی 67 جلد 76 بهار ایشون هم بهار ترخیص میکنه سند و عادت بهار اینه اوشه ابن الولید عن صفار عن برقی بیه مشکلی بر هم مصادره را هم نشو برقی دو برقی پدر کس در خیلی جه ها مراد از برقی پدر اینجا مراد کسره این در کتاب خسال تصریح شده علی احمد بن عبی عبدالله احمد کسره خود من از صابه رد کردم یه شبهه ای دارم من میگم هندش رو با اینکه داریم امروز نگاه کردن به درشناسی باشه دقت یعنی فقط مراجعه تخ... نگاهی به تحلیل بکنیم دانشونه خبرها رو نشد. شوبه دارم که احمد برقی از ابن فضال پسر پدر نمرو معلوم نیست چون ابن فضال به نیامده احمد برقی هم خیلی شواهد روشن نداره که به کوفه رفته باشه پدرش چرا احمد اشعری مسلم یکی از بهترین نسخه هایی که قومی ها از میراث ابن پدر دارن همین نسخه احمد عشق این اینه خیلی بختم چون خیلی عرضش داره زیاد تکرار کردن و این در اشتیار کافی بوده کلینی رحمه الله این نسخه در بوده شده ازاک شرارن انس کردن هر جا ابن فضل در کافی مراد تدره هر جا ابن فضل در تحضیبه قالبن مگه از کافی نهار میکنه اگر در تحضیب ابتدا کرد گفت ابن مرات مراد تسرنه این در اطلاع در کتاب کافی پدره پدر اسمش حسنه پسر هم سه داره، علیش معروف به غرازم این نقطه هم در ذهن حضرات باشه ابن فضل تصریح شده ابن فضل پسر پدر حسن علی ابن فضل، از کردم یک مقدار من شبهه دارن با اینکه که زیاد بیدیم شاید آیان به از این هم رجال بنویسن شاید امروز هم من نگاهی سرنجی کردم شاید درроде سیچنتو حدیث دار که احمد برقی از ابن فضل پدر نام، ولی هنوز شبهه دارم یا ولد ان عبی ساقط باشه یا به نهر رجاده بوده چون شواهد کافی نیست که برقی پدر برقی پدر شهر کوفه بوده یکی از ارکان انتقال میراث از کوفه به قم برقی پدره یکی چه رایه ناهشنه اما احمد اشعریه همه احمد برقی فکر نمی‌کنه هنوز به نقش ما میگه موجود هست نه اینکه اشغال نكنید که ما دها ده مره سر خودمون پیدا کردیم مگر هنوز موفق زنده‌نش نشه قبول علی بن حسن ابن انل کازم علیه السلام اول حسن داره علی حسن کاظم علی السلام موسوی اخر چون حضرت رضا بود چون حسن جان بقولا من خواص اصحاب قبل حسن رضا علیه السلام علی حسن جان از خاندان زراره است به حسن ابن با ابن بوکیر ابن که همین ابو غالب زراری مردو که چند بار اسمش اسمشو بردیم نبه همینه نبی. و میگه کانه من خواست سید عبد حسن رضا علیه سام خب جدش هم هست و تعریفش میکنه حدیث به بس... ب... لحاظ سند مشکل نداره الان فقط به لحاظ فهرستی اون مشکل ما نسخه برقی از کتاب ابن فضال قدر هنوز پیش من واضح نیست این یک نکته نکته دیگه چطور شده در مصادر مشهور نیامده این یک مقدار شبه درست میکنه این یعنی در کافی آمده با اینکه کافی تراس ابن فرزدار داشته. برقی هم خب که کمی متهم بوده دیگه به اینکه یک کمی زریفون فر حدیث به اصطلاع لای یو بالی هم من روا برن یعنی تا مراسیل کذا یک مقداری در احمد حدیثی ایشان اشکال حتی احمد بیرون میکنه بوده در هر حال یک مقداری هم خود من همین شبهه داره اما این خوب دقت این دقت صاحب الفرضار میرسونه این نسخه ایشون قبول باشه. من اصلا رو حرفش نمیگم این که یا شما روشن شد یعنی فقه الفرضار این نکات خیلی به درد ما میکنه. مثلا ما بعضی شواهد اقامه کردیم کافی نقد نکرد صدوق در فقیه نمونده باید و در کتب دیگه اما در خسال که ایشون آورده این که در خوردزا همین آمده خمسون و همین عدد مثباق و احضاشارب و با و, و این نشون میده که البته مز مزمون این هست مثلا به جای فرق و داره الفرق حالا من تو نسخه من الفرق چاپ شدنم یا نسخه من غلط خود من اضافه کنم حالا این جای الفرق بیزن میکنم حالا یا حالا به این ترتیب دقیق خود کتاب خسال نیست اما این آمده یعنی این مطلب در اونجا ذکر شده حتیبا. بله، هست کن روایت نه برده روایت نه برده بحث فقیه برده از این راجع به این قسمه روایات دیگر حالا تو دنبال بقیه روایات هستید روایات دیگری که ما الان داریم در تعیید این مطلب که اینها فطرت است و مال تحتش مال ابراهیم خلیل بوده در کتاب عیاشی در کتاب عیاشی که اینجا شماره 5 از طلحه بن زید نقل کرده ان جعفر بن محمد ان ابای ان علی ان قال قال رسول الله صلی الله علیه والد روایتش بد نیست یعنی البته کتاب مرحوم ایاشی به ایشان سرد نداره مرسله اما چون خود کتاب ترحط نزه تاید حدی معروف بوده به احتمال قوی از کتاب ایشانه طریق اصحاب ما به کتاب ایشان خوبه خود ترحط نزه ترسط نجاشی تر توصیح نشده شیخ فرموده آمیان یا آمیال مذر الا ان الا انه کتابهو معتمده مرحومه استاد هم و گفتن این کتاب هم تنظر ملازم است با بساقه دنی من وارد اون بحث نمیشم چون جاش اینجا نیست اونجا اینجور داره اینالله عزوجل بحث خلیلهو به لحنیفیه و او به اخذ شاره و قسل اغفار و دتفل عبد و حلق الانه و الخطان این در این جاین جا، حنیفی یدی که آمده پنجتاست از این پنجتا از این پنجتا اون گفت پنجتا در سر پنجتا در جسد از این پنجتا مال سر فقط از شارب آمده اون چارتای دیگه تو اون رواد جزا بدن آمده هستن ناخم گرفتن و زیر بقل گرفتن و حلقه آنه و خطان ختم کردن جزء بدن آمده پس از اون تا تو این رواید پنج آمده یکیش مال رأسه که احضور شاره ده چهار تا بدنه از این تمام این حالا انت واقعا منم گیر دارن چه نقطهی بوده که مثلا ادهی از خودم این کاره کردن من احاوز می فهمم. اون بحث اساسی ما چیه اشتره لهی هستیه اون از این نیست باهده اون یکی رو جهاز که. اگر خیشوی صدر شوره میشه اولده سبیل آورده متاسفانه باز ریش را حذف کرده اسکا صفحه رضا نماله با تلویزیش تو کتاب استصال هم که اومد میگه بعد از این چون ما سنیا رو میخونیمه نه صفحه بعد بگید در این متن تفسیر عیاشی من قرارن هستم که عیاشی روایت داره که در مصادر دیگه ما کل نیست باز در کتاب ایاشی از زراره که کاملا موصله چون موقعا طرقی طریقی به زراره نمیدونی من ابی جعفر علی السلام قال ما عبقه هنیفیت تو شیعن حتی ان منها قصد شاره و قلم ازفار و خطان این هم که پاول دهار درش کرده از اون ده ستا رو یکی مال سره اونم باز سریه بسته تمام هی روایت ابوالشبیب و عقل شاره و قص سبیل رو آورده از بدنم دو بار آورده ناخن رو ختم کرده این روایت هم در مصادر دیگر ما فعلا وجود نداره دقیق فرمودید در کتاب مکارم اخلا کمال مرحوم طبرسی ایشون از صادق علی نقل کرده این هم الان در اختیارمانی است. کان بین نوح و ابراهیم علیه السلام عرف و کان از شریعت و ابراهیم به توحید و اخلاص و خل الانداد انداد شریخ خلع رها کردند دور انداد و وحی الی که فتن الناس علیه وحی الحنیفیه به نظر من وحی الحنیفیه باطنه. چون باطل است چون جزء ظاهره این احتمال میدان باطل باشه و اخذ عليه بيصابه و ان لا يعبد الا الله ولا يشرك به شيئا هل روايات دیگه هم هست که خیلی هز اموری هز از اموری که این شرع هست از هدایا اصحابین وقت ابوالانبیا از اون پیروی قام و امره به صلاه و امر و نهی و نم لهو احکام اما احکام خاص فرض الموارث مثلا شاید دیگه اینا نبوده احتمال داره مثل مواریس و رح ثابت نازل میشه با اوان جمع نبوده مدربن بشه وزادهو فلحنیفیه این که مواره همین حنیفیه زاره است الختان و قصد شاره و نتفل این این ختان باز مال بدنه قصد شاره مال رحسه نتفل ایف زیر بقل چینجن زیر بقل اینم مال بدنه له الاسقار ناخون گرفته اونا مال بدنه هر قرآنه اونم مال بدنه چهار دجمال بدنه یکی مال سره باز هم افعاله ها نداره اون رو اشتراشین که همه مهد کارمان باز همچین یکی نیامده و امره به بنا البیت والحج و, الحج و فهادهی کله ها شریعت و والله الله that he is answer